بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومین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 السلام على محمد بن علی الجباد السلام على علی بن محمد الهادي، السلام على الحسن بن علی الزكي الاسکری السلام على الهجت بن الحسن القائم. السلام عليک يا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليک سلام الله ابدا ما بغیت و الليل والنهار و النهار و لا جعله الله آفر الهد من نی لزیارتكم. السلام على الخسین وعلى علي ابن الخسین و على اولاد الخسین و على اصحاب الخسین امام باغر علیه السلام به نقل مرهوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار صفحه دویست و فرمودن وقتی جد ما امیر المؤمنین علیه السلام از سرزمین کربلا عبور می قبل از واقعه آشورا در زمان حضرت نگاهی با اون سرزمین انداختن و فرمودن ها این مکان مناخ و رکابن اینجا جایگاه فرود آمدن است و مسار او شهدا شهدا و جایگاه جنبازی شهیدانی عاشق است لا یسبقهم من کان قبلهم انهایی که قبل از اینها بودند بر آنها سبقت نجستند ولا یلحقهم من بعدهم انهایی هم که بعد میآیند نمیتوانند بر آنها سبقت بجوینند ما با الهام از این روایت امیرالمومنین علیه السلام که امام باغر برای ما بیان کردن، این بحث رو با هم طرح کردیم که اگر بناس از مکتب ابی عبدالله درس بیاموزیم و به عنوان شیعه و پیرو با اون بزرگواران در دهه محرم و ماه محرم و سفر و مناسبت دیگر تنها به یک کارهای تقلیدی احساسی بسنده نکنیم بلکه با مکتب اونها آرمان اونها هدف اونها بیشتر آشنا شویم از این روایت چه می آموزیم؟ روایت می‌فرماید اینها کاری کردند که نه قبلی‌ها سبقت جستند نه بعدی ها خب ما می‌دونیم که اگر انسان قرار به جایی برسه با حرف زدن تنها با ادعای تنها با آرزو و تمنی تنها نیست انسان باید عمل کند لباس عمل بپوشاند اما وقتی عمل عامل پیشبرنده و کمال بخش انسان هاست آیا هر عمل بدون قید و شرط قطعا نه ما یک کمیت عمل داریم یک کیفیت عمل اونچه که در فرهنگ دینی مهم جلوه کرده کیفیت عمل است کیفیت عمل مربوط به چیست؟ کیفیت عمل مربوط به انگیزه عمل نیت عمل پشتوانه عمل خب این که برخی اعمال بر مبنای انگیزه و نیت از کیفیت برتری برخوردارن که امام حسین علیه السلام راجع به عمل شهدای کربلا اونو در اون سطح بالا به ما معرفی کرده این کیفیت عمل که بر اساس انگیزه است از چه برمیخیزه. و ما به عنوان پیروبان مکتب عبی عبدالله و فرموده امیرالمؤمنین تا چه اندازه می اعمال خودمون رو هم تو اون جهت سوق بدیم ما شکلی از اونها به اندازه توانمون در خودمون ایجاد کنیم که بگیم ما هم الگو گرفتیم و پیرو شدیم خب ریشه اعمال در دنیای درون ما وقتی ریشیابی می‌کنیم باش شناختی که این دو سه شب تو انسان شناسی نفس انسانی قوای نفس انسانی که انسان رو توی مسیری قرار به حرکت باداره سه چیز بود حس عقل دل حس به احساس محسوسات می‌پردازه و اگر قرار بشه حس تنها دخالت کنه عقل به کمکش نیاد حتی ممکنه این حس مخربم بشه بینایی منهای دقت عقل شنوایی منهای دخالت قدرت عقل احساسات منهای تعقل و تفکر و عاقلانه عمل کردن این ممکنه حتی بسیار خطرناک هم باشه و به همین دلیل برخی اعمال تقلیدی کورکورانه است برخی اعمال حیجانی احساساتی مقطعی موقت است که اینها خطرات بسیاری رو هم با خودشون به همراه خواهند داشت من یک نمونه قرآنی عرض می‌کنم در رابطه با بنی اسرائیل قرآن کریم در خیلی از جاهای خودش وقایه بنی اسرائیل را به عنوان درس عبرت برای ما بیان کرده که از اونها درس بیاموزیم من جمله در سوره مبارکه بقره آیات پنجا پنجاو یک پنجاو و از فرقنا بکم البحر پنجینا کم و اقرقنا آلا فرعون و انتم تنظرون میگه شما یاد بیارید قضایهی که برای بنی اسرائیل بود؟ ما به بنی اسرائیل و امت حضرت موسی گفتیم فرقنا بكم البحر ما بهر احمر رو برای شما شکافتیم و اغرقنا آل فرعون همه فرعونیان غرق کردیم و انتم تنظرون شما دیدید شما نظاره کردید این نکته مهمه که شما دیدید مشاهده کردید که وقتی با موسی همراه شدید حرف موسی رو گوش کردید پیرو پیغمبر خدا شدید کار به کجا رسید که بحر شکافته شد همه فرعونیان غرق شدند و ما شما رو نجات دادیم خب این یک مرحله آیه بعد چی میگه و از واعد ناموسا اربعین لیله سمت تخستمالعجل ما چهل شب با موسا بعده کردیم چهل روز با موسا بعده کردیم همه شما بعد از این چهل روز با این که دیدیده وقتی با موسی هم راه شدید، انایت خداوند چگونه شامل حال شما شد؟ شما در غیاب حضرت موسی که چهل روز از میان شما رفت، گسال پرست شدید. ازواعدنا موسا اربعین لیل سمت تخستم لعج من بعده و انتون ظالمون. ثم افونا انکم من بعد ظالک لالکم تشکرون. اف کردیم شما را بخشیدیم. باشد که قدردان بشید آیه بعدی رو دقت کنید. و از آتینا موسل کتاب و بالفرغان لعلکم تحت سوال. در آیه پنجاه فرمود و از فرقنا بکم البحر و انجینا و اقرقنا آل فرعون و انتم تنظرون شما دیدید این صحنه رو اما چی شد که وقتی چه روز موسا از میان شما رفت شما گسل پرست شدید و در آیه چارمی که تو این چهار آیه الان خوندم ملاک هدایت و چی فرمود؟ و از آتینا موسل کتابه و فرغان لعلکم تحت دون. کتاب فرغان عامل فرق گذاشتن بین حق و باطل با چی کار داره؟ با احساسات یا با تعلیم و تعلم و فکر و عقل و تدبر و اندیشه و تحلیل یعنی اگر بنابشه فقط با احساسات مردم یک اعمالی رو انجام بدن امروز جو به گونه است که همراه حضرت موسی احساساتی میگن درود بر موسی پشت سر موسی حرکت میکنن و دیدنم که چی شد اما همین مردم که گفتن درود بر موسی همراه موسی رفتن یه سامری پیدا میشود چنان احساساتشون میتونه فریب بده تحریک بکنه که از فرعون پرستی به گوساله پرستی برگردن از این چی میاموزیم اگر اعمال به کیفیت هست نه کمیت کیفیت اعمال به انگیزه اعمال است. انگیزه اعمال اگر بر مبنای احساسات تنها باشد پیشبرنده نیست کاری را از پیش نمیبره باید تفکر تدبر تعقل اندیشه معرفت پشتوانش باشه به همین دلیل گفتیم حس به علاوه عقل یکی از اون مراحل عالی است که میتونه اعمال انسان رو جهت بده و پیش ببره به شرطها و شروطها شرط و شروط چیه؟ اگر عقل گفتیم جنبه عقل نظری با توجه به زدودن موانع پیشدابری ها رو کنار بگذاره تعصب غلط و کنار رو کنار بگذاره زنیات و حدسیات رو کنار بگذاره مواد ای که در این بحث تعقل و تفکر قراره به کار ببره سالم و اصولی باشه این تو مرحله عقل نظری تا شناخت درست در عقل نظری پیدا کنه اما در مرحله عقل عملی موانعی که نمی گذارد عقل عملی اون چرا که در عقل نظری برای او حاصل شده به عمل تبدیل کنه اون موانع را هم کنار بزنه مثالی که دیشب ارز کردم نسبت به ظاهر ما و باطن ما دقت بفرمایید تو ظاهر اگر چشم من میبیند ماری داره میاد اینو جنبه نظری بگیریم پس مار است کشنده است سمیز خطرناک است جنبه عملی پس پاشو حرکت کن حالا اگر پانه میشم حرکت نمی کنم، یه مشکلی دارم یا پام فلجه یا بقدری تنبل و بیحالم نیروی جنبش رو در خودم ایجاد نمی کنم در مرحله عقل وقتی عقل نظری یک حقایقی را می فهمد هست چه می شود که عقل عملی لباس عمل به اون نمیپوشاند پوشاند چندین مانع سر راه قرار گرفته راحت طلبی منفعت طلبی شهوات عوامل گوناگونی که سر راه عقل عملی قرار میگیره نمیذاره پس اونم باید کنار بزنیم با کنار زدن اینها نسبت به نتیجه عقل در بخش نظر حکمت نظری در بخش عمل حکمت عملی اعمال میشه عاقلانه ولی تا اینجا عمل شد عاقلانه روایت امیر علیه السلام نسبت به شهدای کربلا تعبیر دیگری به کار برده مسار او عشاق شهدا عمل رو عاشقانه معرفی کرده پس یک عمل بر اساس احساسات و هیجان و تقلید کورکورانه این ارزشی نداره عمل بر اساس عقل تحلیل ذهنی اندیشمندانه خیلی هم ارزنده است و این خوبه اما این که امیر فرمود عمل شهدای کربلا عمل آشغانه بوده است طبق روایت خب اگر عمل آشغانه است تفاوتی که بین عمل آشغانه و عمل عاقلانه هست چیه؟ ارز کردم یک عده گفتن این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه گفتیم این غلطه اون شکل درستی که عمل عاشقانه زمانی عمل عاشقانه درستی است که با عمل عاقلانه همراه باشد وعده دادم از روایت امام صادق علیه السلام توضیح بدم یک روایت معرفتی جانانه است که روایت طولانیه من بخشی از این روایت رو انتخاب کردم که حقیقتاً همین مقداریام هم که امشب میخوام براتون در رابطه با بحثم بخونم خودش بحث 20 جلسه است واقعا نیاز به توضیح داره در کتاب کفایت الاثر از صفحه 255 تا 259 چار صفحه است مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 70 صفحه 25 این روایت رو آورده مرحوم بهرانی در تفسیر برهان جلد دوم صفحه 93 به مناسبت بحث تفسیری این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه دقت کنید جانانه است ان اولل الباب صاحبان خرد اندیشمندان اون ارزنده ها کیانند اللذین اونایی هستند که عملو بالفکر حتی عمل فکری دارن تعقلشون رو به کار میندازن اندیشه دارن می حتی تا این فکر کار عقل فکر دیدن کار بینایی است شنیدن کار شنوایی است لمس کردن کار حس لامسه فکر کار عقله تفکر و تعقل کار عقله عملو بالفکر حتی عملشون عمل فکریشون اندیشهشون به کار می گیرن عمل اندیشمندانه میکنن فکر میکنن حتی ورسو منهو حب الله تا در اثر این فکر به حب الهی برسد یعنی چی خوب دقت کنید خب حب معنی کردیم عشقم معنی کردیم گفتیم حب دلدادگی است محبت از درون به چیزی وابسته شدنه اشق و معنی کردیم در اصطلاح اوج دلدادگی علاقه شدید قلبی اشق عینش علاقه شین شدید قلب قاف قلبی علاقه شدید قلبی تعبیر قرآنی که معادل این معنی استلاحی عشق اشد حب بن حب شدید خب اگر حب دلدادگی است امام صادق علیه السلام زمینه حب را که دل به طرفش بره چی گرفتن؟ فکر فکر کار عقله حالا توضیح ارز میکنه. ارز کردم بحث چندین جلسه است چون واقعا تیکه تیکش باید مفصل بحث بشه ولی من دیگه به اختزای زیغه وقت سری رد میشم حتی ورسو منهو الله تا ارسی که از اون فکر باقی میذاره میگه آقا من این کارا رو کردم این ارثو باقی گذاشتم یه وقت کارم کار اقتصادی بود ارسی که باقی گذاشتم یه مقدار ماله کار علمی کردم ارسی که باقی گذاشتم آثار علمیه کار و هنری کردم ارسی که باقی گذاشتم آثار و هنریه ارسی که فکر باقی میگذارد، امام صادق می‌فرماید تا به اونجا که حب یعنی دل خدایی بشه یه توضیح مختصری ارزم میکنم. اگر دل با عقل همراه شد مثل عقل با حس همراه بشه از حس استفاده میکنه جهتم میده دلم که با عقل همراه شد از عقل استفاده میکنه جهت میده حالا اول اینجا فکر بیایم فکر کنیم میگیم ما دل داریم دلم قرار دلبر پیدا کنه قرار دل بشه آیا بالاترین دلبر رو بتوانم بشناسم؟ و دلم رو جای بالاترین دلبر قرار بدم بهتره یا دلبرهایی که در مقابل بالاترین دلبر ارزش دلبری ندارن اونو دلبر بگیرم اینو عقل میفهمه یا نمیفهمه این کار عقله کار فکره لذا عقل میگه اگر الله اکبر را قبول کردی به فرموده امام صادق علیه السلام الله اکبر و مما یوسف هر چی میخوای وصف کنی خدا از او بالاتره پس چرا دل تو کاری نمی کنی که این بره توش چرا چیز دیگه میره به این نکته رو دقت کنید این یادگار امسال ما توی این حسینیه باشه میارزه حرف من نیست حرف بزرگانه بنده نقل قول میکنم خیلی حرف امیقه خیلی امیقه دقت کنید محبوب به تعبیری معشوق وقتی در دل عاشق راه پیدا کرد طبق یک قاعده فلسفی فلاسفه میگن از سنخیت و علت سنخیت باعث میشه که هم سنخ رو به خودش منظم کنه همراه راه کنه تعبیر خودمونی که بعضی ها تو عرفم به کار میبرن نوریان مر نوریان را طالبه، ناریان مر ناریان را جازب هن. معشوقی که در دلمی را پیدا می کند با یه مثال عرض کنم اول نکته خیلی زریفه آقای اتاق دارم الان یه نفر وارد اتاق شد ظالمه فاسقه فاجره قماربازه مشروب خاره اونایی که با او سنخیت دارن دم در ببینه در میکنه میگه بفرما اونایی که با او سنخیت ندارن یه عالم ربانی یه چهره معنوی یک شخصیت روحانی وقتی میخواد وارد اون در بشه میگه درو ببند نظر بیاد تو چرا چون سنخیتی با اون نداره حالا به عکس یه فردی وارد این اتاق شده روحیاتش روحیات معنویه عرضش های عالم معنا براش معنا داره درواز میشه میبینه آدمای فاسد میگه درو ببند اینا راه ننه اینا نه اینجا را آلوده می‌کنه ولی افرادی که با اون مناسبت داره میگه اینا رو راه بده معشوق در دل عاشق به اندازه ارزش وجودیش اونی که مناسب با اوست را میده اونی که با او مناسب نیست را نمیده لذا اگر معشوقهای مجازی تو دل آمد اون چرا که مناسب با اون مجازه میکشه میاره ولی اگر تو دل خدا رفت خدا چیزی رو در دل شما اجازه میده بارد بشه که خودش میطلبه؟ حالا ببینید ملاحمد نراغی در دیوان تاقدیس حالا اون روایت حضرت مندا مفصله من یه تیکش رو دارم میگم احمد نراغی در دیوان معروفش تاقدیس چه زیبا بیان میکنه خیمه زد چون در دلت سلطان عشق به این معنی که الان حضرت فرمودن جوری فکر کردی؟ که فکرت میگه الله اکبر رو قبول کردم پس کاری بکنم ای الله اکبر بره تو دلم معشوقی که تو این دل اومده شده خدا محبوبی که تو این دل اومده شده خدا حالا که محبوبه اونچه خدا میخواد تو این دل راه میده اونچه خدا نمیخواد میگه اینا سنخیت ندارم. برو بیرون اینجا جای تو نیست خیمه زد چون در دلت سلطان عشق، ملک دل گردید شهرستان عشق. هم حواز اونجا گریزد هم هوس جز یکی آنجا نیابی هیچ کس آنچه او خواهد همی خواهی بس، نی هوا باشد را و نی هوس بلکه خواهش از تو بگریزد چنان کانچه تو خواهی نخواهی خواهدان گیردن در بزم اطمینان مقام فتخلیفی جنتی آمد پیام چقدر زیبا فهمیده و قشنگ گفته در چه صورتی مثال برمیگردم یه اتاق دارم چی تو این اتاق رفته فاسق رفته بمارباز رفته شرابخار رفته این کسی که تو این اتاقه چشمش به دره بر مبنای اصنخیت و علت الانزمام اونا رو به کشونه بیاره تو ولی اگر اونی که تو اتاق رفته عاشق معنویت و علم و درک و معرفت و هاست منتظر لزامیگه فتح علیپی عبادی بیا تو جادین اینجاست برای اینک اونی که در دلت این امور حالا امام صادق علیه السلام چی فرمود ان اولل الباب الذین عملوا بالفکره حتا ورثوا منه حب الله خب میشه فئن پا آورده نتیجه این فکر که حب را به دل شما برد این می شود چه می شود حب الله اذا و قلب استذا اینجا قلب در مقابل عقل می میشه دل با اون قرائنی که شببا گذشته گفتم. حالا که این ارث به قلب رسیده یعنی دل به کمک فکر محب خدا شد استظا بهی به وسیله اون حب کسب نورانیت میکند دل میشه نورانی و اسرع الیه اللطف به سرعت عنایات الهی شامل حالش میشه فاذا نزل منزل اللطف سارم من اهل الفعاد اینجا کلمه فعاد و به کار برد وقتی که به منزل لطف رسید حالا میشه صاحب دل حالا اهل دل اینو میگیم دل کدوم دل با فکر محبوب واقعی را بشناسد بعد دریچه دل را به سوی محبوب واقعی باز کند حالا که محبوب واقعی توی این دل اومد این دل نورانی میشه حالا که دل نورانی شد این میشه دل فازا فا سار من اهل الفؤاد حالا اگه صاحب دل شد اهل فؤاد شد تکلم به حکمت این سخنانش میشه حکیمانه فإذا تکلم به حکمت سار صاحب و فتنه وطای مؤلف میشه یک انسان زیرک هوشمند فإذا نزله منزله الفتنه عمل بهافل وقدره اینجا عملش میشه یک عمل قادرانه پرتوان فرد زیرک هوشمندی که فإذا عمل فلقدره عمل فلاطباق سبعه این طبقات سبگانه هفت شهر عشق را ما هنوزن در خمه ایم هفت آسمان اشاره به هفت مرحله تکاملی است که انسان میتونه از مراحل گوناگون عالم ملک تا به عالم ملکوت سیر کنه خودش یه بحث مفصلیه میگه این انسان عملش به گونه است که به این هفت طبقه او رو میکشاند فإذا بلغ حاذ وقتی به این منزلت رسید ساره ينقلب یعنی في و فیلوت و حکمت و بیان اینجا حکمت و بیان برای او حاصل میشه فا بلغ هازه المنزله جعلش شهوتهو و محبتهو فی خالقه حالا که به اینجا رسید شهوت خاستها محبت فقط برای خدا میشه فعل ذالک یه انسانی که دلش محب خدا شد و جز خدا چیزی تو دلش قرار نگرفت بر اساس اون محبت کسب نورانیت میکند شهوتش خاستش هر چیزش فقط برای خدا شد نزل المنزلتال کبرا به اون بالا و ارزشمندترین منزل نائل میشه که چیه؟ فآینه ربهو فی قلبه خدا رو در دل خودش میبینه ما آینه میکنه وقتی به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردن یا علی خدا را دیده ای فرمودن خدای ندیده رو عبادت کنم اشاره به این بحثه نه یعنی با این چشم میشه خدا را دید یعنی چنان در دلم جا گرفته است که چشم دل داره همه عظمت الهی. این درجه میشه اوج محبت که به تعبیری بگم عشق اگر شهدای کربلا جز به امام حسین فکر نمیکردن چون دلشون رو برای خدا باز کرده بودن. تو دل فقط خدا بود. تو دل که خداست خدا الان چی میخواد؟ خدا امام حسین رو میخواد. و اینا جز امام حسین هیچی نمیخوان و لذا وقتی معشوق در دل عاشق جا گرفت آشق اون چنان شیفته معشوق میشه که خودشو نمیبینه فراموش میکنه به همین دلیله که وقتی از امام باغر علیه السلام سؤال کردند آقا جان شهدای کربلا این همه شمشیر خوردن این همه نیزه خوردن این همه خنجر خوردن این هم اینا چقدر رنج بردن تو روایت داره امام علیه السلام اینجوری کردن با این انگشتشون زدن روی دستشون فرمودن این مقدار یعنی چی؟ از قرآنی استفاده بکنن شما وقتی که زلیخا میخواست به زنان مصر بفهمونه منو انقدر سرزنش نکنید کسی یوسف یوسفو ببینه میتونه خودشو کنترل کنه یا نه حالا بر مبنایش نم مجازی نمیخوام توجیه کنم ولی بیان قرآن ارز میکنم وقتی نارنج به دستشون داد و کارت اینکه دیگه قرآن میفرماد چی شد که دستشونو بریدن نفهمیدن؟ چنان جذب او شده بودم که خود را فراموش کردن و لذا در داستانهای اخلاقی و عرفانی برخی شعرها سرودن میگن که مثل مجنون و لیلی که واقعیت خارجی نداره ولی برای تفهیم مطلب اینو برای ما توضیح دادن میگه داش روی دیگ قضا مشغول کار بود معشوقش رسید همینجور که با این ملاقه داشت به هم میزد هول شد ملاقه افتاد با دستش شروع کرد به هم زدن دسته سوخ نفهمید بعد از این محشوقه چی شده؟ حالا اگر دل خدا شد چنان غرق خداست میشه ابراهیم خلیل و رحمان که ابراهیم خلیل و رحمان وقتی در آتش میافتد آتش رو متوجه نمیشه فقط خدا رو متوجه میشه و بر مبنای اونچه خدا میخواد او داره انجام وظیفه میکنه مطلبی رو اینجا اجازه بدید من از تفسیر قرآن از ملا صدرا جلد 6 صفحه 97 براتون بخونم اون فرمایش امام صادق علیه السلام با اون بیانه که خیلی فشرده رد شدم چقدر زیبا نتیجه ای که تا اینجا از روایت با های قبلی گرفتیم چی شد؟ آقا عمل انسان است که به انسان ارزش میده کمیت عمل نه کیفیت عمل کیفیت عمل به انگیزه عمله انگیزه عمل به عامل انگیزه است. عامل انگیزه احساسات تنها نه. حس به علاوه عقل عالی. ولی حس به علاوه عقل زمانی عالیترین ترین است. نه عالی تر حتی. ترین است. که به فرموده امام صادق علیه السلام حس و عقل با فکر محبوب را به دل ببرد. خب الله را. حب الله که به دل رفت این دل رو نورانی میکنه. دل که نورانی شد انگونه میشود که میشه صاحب دل. صاحب دل شد به مقام شهود الهی نائل میشه. حالا عملی که بر اساس یک انسانی که در دل شهود الهی دارد با کسی که فقط یه فکری نسبت به خدا داره قابل مقایسه هست. پس اینجا برای اینکه عمل ما درست باشه باید چه کار کنیم؟ یک. باید رو عقلمون کار کنیم. کار عقلی بکنیم. لذا اگر جلسات امام حسین ما فقط با احساسات بگذره آقا صدای خوب خیلی خوبه مددایی هم من دستشون رو میبوسم پاشون میبوسم خیلی ارزش داره ولی ما جلسات رو بر این مبنا بپسندیم رچم خوندن کی قشنگ تره کدوم ریتم رچم سینه زدنشون عالی تره کدوم مجالس حال میام حالم بر مبنای نحوه خوندنه این درجه ایست حال میان بر مبنای فهم کدوم بالاتره؟ پس جلسات با تفیم باشه جلسات با تعلیم باشه لذا پیغمبر خدا طبق روایاتی که شیعه و سنی با هم نقل کردند پیغمبر خدا وارد مسجد و نبی شدن یه دسته اینور نماز مستحبی می یه دسته اون بر مشغول بحث فکری و علمی برای فهم بهتر دین بودن حضرت فرمودن هر دو دسته کارشون خوبه ولی من وارد اون دسته میشم. ما باید تو جلسات تبیین و تحلیل کنیم اگه میخاییم عملمن عمل ارزنده عمل باشه از احساسات تنها بیایم بالاتر بیایم تو مرحله تعقل تفکر تعقل و تفکری که ما رو به حب الله برسونه اما بعد باید, باید, باید با دل کار کنیم حالا اینجا یه مقدمه باز میچینم همون جوری که مثال خونه و یه فردی تو خونه و در به کی باز میکنه زدم تا رو بتونم یه کمی توضیح بدم یه مثال اینجا ارج میکنم تا این عبارته ملا هم بتونم توضیح بدم اینجا عنایت بفرمایید ما اگر الان یک مثلا منظره ای یک حقیقتی همین فضایی که الان مثلا اینجا تو حسینیه داریم خب یه ادعای آقایون یه ده خانما نشاستن دور هم این یک واقعیتی است که اینجا وجود داره بنده این کاغذ رو بخوام به سوی شما ها بگیرم چیزی در این منعکس نمیشه. حالا اگر این آینه باشه. ویژگی آینه چیه؟ اگر این طرف گرفتم این منظره درش منعکس میشه. این طرف گرفتم این منظره این طرف گرفتم این منظره. ولی اینجا یه شرط داره. شرط چیه؟ آینه زنگار نداشته باشه. آینه تیره نشده باشه. دوتا شرط برای این که این منظره در این آینه بیفته وجود داره شرط اول آینه زنگار نداشته باشه دوم من آینه رو این بر بگیرم این ور نگیرم حالا دل به منزله اون آینه است باید اولا زنگار را از آینه دل بزدائی حالا روایتشان براتون میخونم دوم به حقائقی که عقل میگه ارزشداره بگیرید به اون چیزایی که احساسات میگه نگیرید رو به اون چیزایی که شهبت میگه نگیرید رو به اون چیزایی که غریزه میگه نگیرید اگر آینه دل را به طرف محبوب شهوانی غریزی گرفتید در آینه دل چی میاد بر این مبنا برخی از اهل دلهای واقعی اهل دلان توجه دارند دل یعنی چی میگن یک جلسه نشستن با نااهلان چنان بر آینه دل ما زنگار ایجاد می کند که ساعتها باید بخوشم تا این زنگار را بشویم و ببرم شاید اون حدیث نبوی اشاره به این مطلبم باشه که به پیغمبر گفتن یا رسول الله با کیا نشست و برخواست کنیم فرمودن همین سوال رو حواریون حضرت عیسی از حضرت عیسی پرسیدن من نجالس یا روح الله و کیا بشینیم فرمود من یا و الله رویتو اونایی که وقتی نگاهشون میکنید شما رو بیاد خدا بندسن و یزید <تصفيق> و, و فی علم منطقه وقتی حرفی میزنن یه چیزی به شما افزوده بشه و یرقبه بکن فی آخرت عمله وقتی عملشون رو میبینید رقبت آخرت در شما ایجاد بشه حالا ببینید ملا صدره این مقدمه رو چیدم این عبارت رو دقت کنید و علم ان سعادت الانسانیه منوتتون به شیعین سعادت انسان به دو چیز وابسته. است همین جوری بعد یه تصویر بگیرم ذکر بگم بنده میخواهم سعادت من شو. بنده میخواهم سعادت من شما این مثل اینه که بنده الان زخم معده دارم یه تصویر بگیرم نمیخوام بگم قدرت های سیتری معنوی آلم ملکوت و مرگهادنه ندارا نقبول دارم و میپذیرم دلیل شم دارم اما سنت خدا که این نیست بنده اگر یه تصویر بگیرم بگم من میخواهم زخم مهدم خوب شود من میخواهم زخم مهدم خوب شود من میخواهم زخم مهدم خوب شود طبق سنتی که خدا قرار داده سنت الله ولن تجدل سنت الله تبدیله زخم مهدم خوب میشه راه داره باید اقدام عملی بکنم. بنده میخوام سعادت من شوم خب راهش چیه؟ وعلم ان سعادت انسانی یامنود به شیعین بل علم الذي عبارت ان ال ایمان به الله و ملائکته و کتبه و رصله و یوم آخر. این همون میشه که بسم الله الرحمن الرحیم و عصر ان لفی خص آمنو قسمت اولش. حالا ارتباطش با اون روایت که ایشون از اونا چون جوری میپهمه ارز میکنم قسمت اول باید با ایمان باور کرده باشیم ایمان چیه؟ یعنی در از مرحله تفکر و تعقل به مرحله دل راه پیدا کرده باشیم اول تحلیل لغتی شده دقت بفرمایید. ایمان از امنیته امنیت آرامش نقطه مقابل ازترابه شما این دعای بسیار معروف و این حدیث بسیار معروفی که تو دعاهای ما هم خیلی روش حساسیم و واقعا هم باید این دعا رو بکنیم نعمتان، مجهولتان، از صحت و بل، امان یکی از نعمتها امنیته شما الان اینجا نشستید خدایا را به عظمتت قسم میدم خدایا را به بزرگیت سوگند میدم خدایا تو را به شهدای کربلا قسم میدم بر ما رحم کن و نقشه های دشمنانی که میخواهند امنیت جامعه شیعه را به خطر بندازن شرشون را به خودشون برگردون و امنیت رو برای بشریت خدایا انایت بفرما و خدا ریشه آل سعود و آل خلیفه و داعشی را که نقطه اصلی به هم زدن امنیت در این منطقه هستند به انایت خودش رخوار و ذلیل و قاص فرماید ان الان این امنیتی که ما اینجا داریم خب آرامش داریم حرف میزنیم فکر میکنیم بحث میکنیم سوال میکنیم جواب بدیم، می طبیعیه اما اگر خدای نکرده الان مثل حالتی که تو دوران جنگ اونای که همسن سالای ما یادشون میاد الان آژیر کشیدن خطر بمباران حالا حوصله بحث پیدا میشه همه مضطربن همه چی میکنن این استراب در مقابل امنیت ما این استراب و امنیت رو مثال بیرونی زدم استراب و امنیت درونی یه وقت انسان در درونش مضطربه خدا حقه یا دروغه قیامت راسته یا شاید خبری نیست راستی پیغمبر فرستاده خدا بود امامان برگزیدگان الهی این مضطربه این یقین نداره این دو دله این ایمان نیست ایمان چیه؟ چنان آرامش درونی داره میگه یک در هزار که هیچی یک در میلیاردم تردید در درونم ندارم خدا هست قیامت هست انبیا فرستادگان الهی هست اولیاء برجستگان خدایی و اینکه در درون من آرامش قوی ایجاد میکنه مولا درزش نمیدین میگن ایمان لذایشون میگه اولین شرکی که شما میخواید به سعادت برسید چیه؟ وعلم ان سعادت الْإِنسَانِيَّةِ منوطه به بل علم الذی و عباره ان ال ایمان بالله و ملائکته و کتب و رسوله و الاخر این باور درونی تو مرحله ای که تو دلم راه پیدا کرد حالا این باور درونی چیکار میکنه و بل عمل و به وسیله عملی که کدوم عمل عجب نکته ای رو دقت کرده ملایی رو اینجا ببینید عملی که حاصل چی باشه تصفیه تو مرعات القلب ان شواقل دنیا و مستلزات ها. عجب زیبا بغشنگ و عملی که از قلبی که آینش از هرچه مشغله های دنیایی و لذاعز گذرای عالم مادیس است صاف شده باشه یعنی علم فرموده امام صادق علیه السلام عملو به الفكره این فکری که ارث گذاشت برای دل به درد غیر خدا حیفه تا ارزشش همونی که امیرالمومنین یه تعبیر دیگه فرمودن تو نهج البلاغه ارزش تو بهشت خود تو به غیر بهشت مفروش دل اچیه الهی است دل نتیجه نفخه روح الهی در وجود ماست دل گوهر است که خدا به اون نظر میکنه اما اگه دل باشه اینجا جذبه دی روایت شو بخونم خیلی این روایت قشنگه هر دو از امیر المؤمنین علیه السلام از قرر میکنم تو کافی هم اومده قلوب العباد تاهره دلهای انسونهایی که پاک به قولیشون آینه دل و از این زنگارها زدودن حالا عملی که از این دل برمیخیزه قلوب العباد تاهره مواز و نظر الله سبحانه جایگاه نظر خداست آقا شما مثلا من اسم برم محسوس بشه شما رفتید قوم زمان من رومایه بهجت بود چقدر این در اون در می زدید که آقا یه نیم ساعت من رو به حضورتون بپذیرید یه نگاهی به ما بکنید این مطرح بود برای کسانی که طالبی این بودن یا نه حالا امیر میگه میگه دلتو پاک کن خدا بهش نظر میکنه نظر آقای بهجت با نظر خدا قابل مقایسه هست ل... میگه یه همچه سرمایه شما داری منطقه سرمایه قلوب العباد تاهره مباز او نظر الله سبحانه فمن تهور قلبهو نظر ایلی اون که دلش را پاک میکند خدا به اون دل نظر میکنه خب دلی که خدا با اون نظر کنه برگردیم با اون مثال گفتم تو خونه کسی هست؟ حالا اون وره قضیهش رو بگم فرض کنید یک اهل معنا یا اهل دل حالا اسم بردم مثلا مرگوم های بهجت تو زمان های بهجت داره توی کوچه رد میشه ده تا در خونه بازه هیچ کدوم نگاه نمیکنه یه در میگه بریم اینجا حالا اومدن او نف برای خودش نیست نف برای ماست این همه دلها در این عالم طبق بیان امیر المومنین خدا به کدوم دل توجه میکنه؟ به دلی که پاکه خب توجه خدا به یه دل برای خدا می داره یا برای ما دل میکنه خدایی دلی که شد خدایی زبان میشه خدایی نگاه میشه خدایی حرف میشه خدایی حرکت میشه خدایی همه چیز میشه خدایی این در صورتی است که خدا باشه نه منیّت صلای یباده پیر خرابات بدساقی که فت تاخیر آفات حافظ میگه سلوک راه عشق از خود رهایی است نتی منزل و قطع مسافات از خود رهائیست خودو بذره کنار دل میشه پاک لذا در زیل این آیه شریفه در رابطه با اهل بیت در سوره مبارکه حلعتا اومده اونجا ای که اونجایی که ویت امونت تاام الا حب بهی مسکینن و یتیمن و اصیراتا و سقاقم ربهم شرابن تهورا تفسیر مجمع البیان زیلش نگاه کنید از امام صادق علیه السلام آقا این سقا هم شرابا هم تهورا این شراب تهور چیه که ساقیش خداست خدا این شراب رو به اینها داده همونطوری که شراب در معنی ظاهری مادی شراب مادی که حرام است و نجس است این شراب کارش چیه انسان را از ارزش ها غافل می کند از عقل غافل میکنه. از اونچی که دورور شماست قافل میکنه لذا این بده چون از چیزی که نباد قافل بشی غافل میشی ولی شراب تهور انسان رو از اون چیزی که بناست غافل بشه غافل میکنه لذا امام صادق فرمودند این شرابن تهورا یعنی اون انایتی که دل غیر از خدا توش راه نمیده لذا اگر قرار اونی که تو کوچه رد میشه میبینه ده تا در بازه میگه اینا نه اینا نه اینا نه بیاییم بریم تو اون خونه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد امیر میگه یار یاران جان جانان حضرت حق میخوای بیاد تو خانه دلت که حدیث قدسی هم فرمود لا یسعونی عرضی ولا سمائی بل یسعونی قلب و عبدی المؤمن آسمان زمین گنجایش منو نداره ولی دل عبد مؤمن من جایگاه منه ولی کدوم دل غلوب العباد تاهره مواز و نظر الله سبحانه فمن تهور قلبهو نظر الی روایت بعدی از امیر المؤمنین علیه السلام باز در قرر قرار الذین اخلسو اعمالهم لله و غلوبهم لموازعه نظر الله کجا کو که حضرت دنبال اینا میگرده عین الذین کجا اونایی که اخلصوا اعمالهم لله و طهروا قلوبهم لموازعه نظر الله دلاشونو برای اونجا که قرار خدا به اون نظر کنه چکار کنه خب پس حالا ما یه قرار ارزش افراد رو بر مبنای اعمال اونم کیفیت اعمال بدانیم. طبق این دلائلی که چه با عقل، چه با حدیث، چه با آیه داریم با ام بحث میکنیم. عملی که از احساسات تنها باشه ما را به جایی نمی اینم بگم دشمنا دلشون میخواد ما رو سرگرم احساسات بکنن. ولی زا نخشه های زیادی هم در طول تاریخ کشیدن از صدر اسلام. اگر فرصت بود براتون اثبات می کردم پیدایش اشائره در تاریخ اسلام یک نقشه سیاسی حساب شده بوده که مسلمون ها رو از تفکر و تعقل در دین باز بدارن کتاب من و شمای مسلمان قرآنه چقدر قرآن تاکید کرده تفکر، تعقل، تطبر، تدبر، افلا ی افلا ی افلا یتدبرون تا اونجایی که از معصومین برای من شما نقل کردن تفکر و ساعت افزل و من عبادت سبعین سنه میاد راحت یه مکتب درست میکنه اکثریت مسلمین هم جز پیروانش میشن میگن عقل چی است عقل کنار بابا در اون جایی که قرار عقل دخالت نکنه غیر مستقلات عقلیه بله عقل حق نداره دخالت کنه قبول داریم ولی در پایه های دین که قرار عقل دخالت کنه اگه دخالت نکنه کار به کجا میرسه لذا ما اگر میخوایم عملمون عمل باشه باید از احساسات بیایم به طرف عقل عقل با ضوابط زمینه رو فراهم کنه برای دل دل بیاد با تهارت محب بشه. تعبیر دینی بیشتر محب گفته شده ولی عشقم به کار رفته ببینید دارم روایتشو عرض میکنم هم امیر المؤمنین عمل شهدای کربلا را عمل آشقانه نامیده هم امام صادق علیه السلام در اصول کافی به بندگانی که واقعا آبدن فرموده اشقل عباده اینا کسانی هم که به عبادت عشق میبرزن پس عمل عاشقانه، عمل عاشقانه یعنی در دل اون چنان معشوق جا میگیرد که به اقتضای اون معشوق میاد داخل مثال یادتون باشه کی تو این خونه اومده اونایی که مناسب با او دوروبرش میشینن و کی تو این خونه است که کیا رو میتونه بیرون بکنه و ولذا یک حرفی رو مرحوم خاجج نسیر توصی در کتاب اوصاف اشراف راجب توبه زده خیلی قشنگه میگه توبه سه پله داره توبه بازگشت دیگه انسانی اشتباهی کرده خطایی کرده میگه در رحمت الهی به سوی شما بسته نیست برگردید توبه رجع برگردید جبران کنید میگه توبه سه پله داره توبه عوام از معصیت هست معصیت کرده گناه کرده مال عموم میگه خدا یا غلط کردم اشتباه کردم توبه میکنم بر میگردم انشاءالله جبران میکنم خوبه توبه خواست از رزیلت هست نمازش ترک نشده روزش ترک نشده خمسشو داده رو داده حجشو رفته ولی متکبره خودبینه عجب داره وقتی رفته خمسشو داده بعدش میگه منم که دارم اینجور از پول میگذرم اما اون کار انجام داده ولی این رزیلت اخلاقی میگه توبه خواست از رزیلت توبه خواستالخواست چی؟ عوام از معصیت خواست از رزیلت خاص از قفلت قفلت یعنی چی؟ هر آنی که خدا در نظرشون نباشه اینو توبه میکنن این از کجا گرفته؟ مناجات ذاکرین امام سجاد تو مناجات خمسه عشر تو مفاتیح اومده دقت کنید و اشتاق من کل لذتن به غیر ذکرک استغفار میکنم از هر لذتی که به جز یاد تو باشد حافظم تو یک اشاره اینو آورده ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود وین بحث یا وین حدیث با سلاسه با ساله می رود. سلاسه غ چیه؟ الان شما فرض بفرمایید این یه تیکه پارچه نجس شده. آبای لولیکشی و آب کر و آب جاری و اینا که نبود مثل میخواستن با آب این و بدن یه مقدار آفتاب آب میریختن اینو شستشو میداد میچ اون قصالش رو می, داد. می, چلون می, چلون قصاله شو می گرفت. یه بار بار دوم میلون به سال بار سوم میگه سه بار باد خود و ساقی حدیث سر و گل و لاله می روید ساقی و سقا هم رب هم شراب انتهورا. برای اونا خدا ولی برای من شما امیر چون ما که اون لیاقتی که نداریم ما به وسط اونا باید بگیریم خدا ساقی اوناست اونا ساقی من حالا امیر یا علی از اون شراب عشق تو می که زرودم را خدایی کند و جز اون چی که تو می خواهی نبینم خب گفته حافظ وین بحث با سلاسه سه بار خودت به چلون تا ثاغی بهت بد بده چیه یک از معصیت تا زمانی که گناهکاری و معصیت نه عقل خوب میفهمد نه دل میتواند ارزش ها را به خودش را بده دوم کافی نیست از معصیت رذیلت این ها را به کوب مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی خودش نقل کرده رفتم نجف پای درس مرحوم الله حسین قلی احمدانی با یک دنیا امید و آرزو دیدم استاد تحویلم نمیگیره متوجه شدم خب فهمیدم استاد تحویلم نمیکرده. بعد از درس رفتم خدمتش آقا من یه دنیا امید بودم پای درس شما شما من تحویل گفت خوب فهمیدی همینطوره. می میدونی چرا خب منظور میشه آقا میگن که تبریزی تاجرزاده معروف تبریز بوده پدرش ثروتمند با پول به در درس میخونده امکانات مالی داشته طلبه خوش استعدادی بوده تو حوزه به استعدادش انگشنما بوده گفت جوونم بوده گفت دور برداشته بودم خودم خودم رضا با شما وقتی وارد کلاس درس من شدی خیلی با جست اومدی این ورانورد نگاه میکردی کجا بالاتره بری بشینی در کوی ما شکست دلی میخرند و بس آزار خود فروشی از اون سوی دیگر است برو خود رو بشکن گفتم چشم رفتم خودم و بشکنم هرگز نخورد آب زمینی که بلند است حالا اگر قرار انسان دلش منشع عمل باشد عملی که عاشقانه برای خدا باشه باید از معصیت خودشو بچلونه باید از رزیلت اخلاقی خودشو بچلونه باید از غفلت خودشو بچلونه سه بار این قساله رو باید بگیره حالا پاک شده حالا که پاک شد چه زیبا گفت آقا یه خار تو این پای من نشسته یه ذره کوچولوی خاره دیگه همه آرامش منو به هم میزنه یا نه چون مناسبه با این وجود نیست دیگه وقتی مناسبه با این وجود نیست صاحب یه شعری داره یادم نیست الان ولی مضمونش یادمه خیلی قشنگه میگه یه ذره آب تو روغن چراغ بره چرا پت پت میکنه چرا چون این مناسبش نیست ناخالصی تو جان ما با ما چه میکنه حالا یه ذره خار تو پای منه شب تا نمیتونم اینو آقا میگه چقدر سخته خاره در پا چون بود دشواریاب خاره در دل چون بود واد جواب حالا ببینید کربلا کیا بودن جز امام حسین هیچی تو دلشون نبود چرا؟ چون امام حسین مظهر خدا بود در زمانشون لذا وقتی اینو میفهمه آقا مگه شوخی اینا تو مقام عمل ببینیم همه چیزو می کنار مادره ام و پسرش تازه زن گرفته بابا مادرن پسر پیغمبر تنهاست نمیخوای بری به طرفش اومد خدمت امام حسین علیه السلام آقا اجازه میدید من برم که مادرت همسرت گفت نه خودشون مانع فیض نباد بشه امام خود اینها رو به کمال برسونه رفتن مادر و زنش در خیمه واسدادن دارن جانبازی پسر رو تماشا میکنن دشمنم شهدای کربلا وقتی که شهید می شدن ابی عبدالله علیه السلام یه خیمه ای رو برپا کرده بودن خودشون تشمی بردن گاهی به کمک اطرافیانشون عبدان متحر رو از معرکه می آوردن بیرون زیر خیمه اینا رو کنار هم می چیدن. و سرای اینا رو بعد از ظهر آشورا که مام حسین شهید شد، اومدن تو خیمه جلو چشم زن و بچه جدا کردن و اسب بر اینا تازندن یک سر غیر از ابی عبدالله که سرش تو میدان جدا کردن یکی هم سر وهب که جدا کردن تو میدون علتشم الان عرض میکنم و بعضی یکی بدن از اولفزه که نیاوردن یکی بدنه خورده که قبیلهشون اومدن بردن حالا اینجا وهب رو مخصوصا وقتی که دیدن مادرش اینا دارن نگاه میکنن سرش رو بریدن پرتاب کردن به طرف مادر ببینید ما اینیم مادر چیکرد سرو یه نگاهی کرد اومد به طرف م... میدان محکم پروند به طرف دشمن گفت ما سری که در راه خدا داده این پس نمیگیریم این عشق یعنی این تا عشقی که با عقل همراهه نه اینکه هر کی بکنم بعد بگن آقا این کارت چیه بگه این عاشقانه است دیگه یعنی چی این عشق نیست عشقای یه رنگی بابد عشق ند بعد عاقبت ننگی بود عشق پاکه عشق معشوقه پاک رو در درون راه میده معشوق پاک که در درون بود در روبروی ناپاک میبنده و لذا اون اشکالی که بعضیا نفهمیدن میگن اگر علی ابن ابی طالب در نماز تیر از پاش میکشیدید متوجه نمیشد چطور صدای اون سائل روشنی چون تو دل خداست اون خدا, بخ... خدا میخواد که به سائل جواب بدید لذا صدای سائلو میشنبه بهش جواب میده خدا میخواد رکعات نماز رو رعایت کنه توجه داره رعایت میکنه چون دل او اومده اون وقت شهدای کربلا عملشون عمل آشقان است. حالا روایت دیگری از امام باغر بود امشب دیگه وقت اجازه نداد در میگذره اجازه بدید اگر عمری بود فرد شب برای تکمیل بحث پیگیری بکنیم خب دل این ها جز خدا و جز امام حسین و جز اهل بیت هیچ نیست شب و گفتند که نکنه زینب سلام الله علیه ها دختران عبی عبدالله نگران باشن و حبیب ابن مظاهر گفتند بیایید به قول امروزی مانوری بدیم ببینن ما ایستادیم فردام نشون دادن تا اصحاب زنده بود یکی از اهل بیت امام و اجازه میدون ندادن همه اصحاب شهید شدن بعد نوبت به اهل بیت رسید که اولی حضرت علی اکبر این کارو خودشونو کرده بعدشم که در مسیری که علظاهر و صرا این رسالتشون رو توی این کاروان دارن انجام میدن و همه شکل دارن انجام میدن اونی که یک ذره تو دلش روزنه امید باشه دل و یه ذره به سوی حقیقت باز کرده ان اِنَّلْحُسَيْنَمِ اسْبَاهُ الْهُدَا وَسَفِينَتُ وَنَجَاهِ از اون روزنه وارد میشه و نجاتش میشه دو نمونه را کنم یک گوه وارد بازار شام شدم دیدم شهر آزین بستم جب جب دیگری خدایا نه اید فطره نه اید نه مناسبتیه ماه سفره چرا شهروازین بستن از بیرون شهر اومده بود چه خبره گفتن یزید حالا به تعبیر اونا امیرالمومنین یزید با یه عده خاریجیا که علیه دین ما قیام کردن جنگیده پیروز شده اونا رو خشته، زن و بچه‌ش رو اسیر دارن میارن ما به شخرانه این آزین بست گفتم منم واسم ببینم کی همینجوری که واسطاده بودم دیدم یه سرای بالای نیزه پیشابیش کاروان داره میاد یه ذره روزنه تو دل بود. گوه من نگاه که به این سرای کردم دیدم به این سرای نمیخوره، که اینا خارجی باشه این سرای نورانیت دارن خدا کنه دل بتونه کمی دل باشه همون یه ذره روزنه کم کم دریچه بشه لذا همین دل منو یه تکونی داد تکون چی بود؟ گفتم برم جلو تحقیق خونم حقیق هرچی گفت که آدم نمی پذیره. رفتم جلوتر دیدم یک جوانی سوار بر شتر برهنه کردن دستاشو با زنجیر بستن این زنجیر آوردن از زیر شکم شطور پاهاشو بستن آوردن دور گردن بستن که ایشون روی این شطور تکون نمیتونه بخوره اومدم جلو دیدم مرد این ایشونه آقا امام سجاد گفتم آقا شماها چه دعوایی با اسلام داشتید به شما نمیخوره با اسلام در افتید فرمودن پیر پدرجان قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن که کتاب ما مسلموناس به شما چه ربطی داره؟ فرمودن سوال دارم قرآن خونده ای بله؟ این آیه رو در قرآن دیده اید؟ اِنَّمَا الله اللَّهُ لِيَزْهِبَنَّكُمْ الرجس اهل الْبَيْتِ وَيَتَهَرَّكُمْ تَطِيرَاً خب بله این آیه که راجبه اطرت پیغمبره راجب تهارت و اسمت اهل بیت پیغمبره. گفت سوال دیگه ای دارم این آیه رو خونده ای؟ قل لا عليها اجرا الا المبدته في الغربا بله این آیه است که دستور داده ما به اهل بیت پیغمبر مبدد کنیم گفت این سر حسین پسر پیغمبره من علی ابن حسینم. پیر پیرمرد فریاد زد آی مردم شام کلا سرتون گذاشتن میدونید چه کردید بعد رو کردم به امام سجاد علیه السلام گفتم آقا کاری از من برای شما ساخته است فرمود پولم را داری؟ ارز کردم بله با به این نیزه دارا بده یکم جلو مردم میخوان به این سرا نگاه کنند به ناموس ما نگاه میکنند سرو به برنجلویتر اینقدر اینا به ناموس ما نگاه نکنند میگه رفتم و کمی پول به این نیزه داره دادم و اینا رو روانه کردم برگشتم عرض کردم آقا این انجام وظیفه کردم کار دیگری از من ساخته است امام خودخانیستن برای خودشون میخوان پیام به ما بدن فرمود میتونی یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی به من بدی برای چی؟ این زنجیر گردن منو زخم کرده. یه تیکه پارچه زیر زن من اماممو رو بریدم دیدم دست آقا بسته است نمیتونه زنجیر رو تکون بده من به زحمتی خودم رو بالا کشیدم امام سرشونو پایین آوردن این زنجیر رو برداشتم که پارچه رو زیرش بذارم خون جاری شد از طرف دیگرم امروز دیگه قبیله بنی اسد اومدن زنا گفتن اگر شما نمیایید ابدان و دف کنید ما میریم مردا به غیرت افتادن اومدن متهیرین بدن ها رو نگاه میکنن اینا سر نداره این بدن کیه یه وقت دیدن از دور به امامت امام سجاد علیه سلام تشبه آوردن بنی اسد من به شما معرفی میکنم این شهدا رو اینجا دف کنیم اینا چنین اینا چنان بریم کنار الغمه این بدن اموی من عموی ما اونجا به خاک بسپریم حالا بیایم تو گودال قسلگاه این بدن ر اربن اربای خود ابی عبدالله همه سهلی اکبر بوریایی بیاورین بدن رو بوریا گذاشتن امام سجاد وارد غبر شدند، میخوان صورت متوفار را علال رو خاک بذارند، حسین سر در بدن ندارد، رگهای گلوی ابی عبدالله رو, رو روی خاک گذاشت لبان مبارک رو روی گلوی بریده بابا قرار داد بن الاسد دیدن امام سجاد از قبر بیرون نمیار اومدن آغار رو از قبر بیرون بیارن صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله وعلى الله التي التي ببناك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيتم وبغي الليل هم والله جله الله اخر لعهد مني لزيارتكم السلام علان وحسن اللهم باسمك العظيم الأعزام العزل جل الأكرام بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب الغنوب ثبت قلبي على آذينك وكفنا يا غازي يا حاج ويا كافيا المحمود ان لك مجيب الدعوات ان إلّ لك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا سيد السادات يا رفيع يا عالم الخفيات يا معي السياد يا رب العالمين نجات منك که یا الكريم الكریم نجنا و خلسنام به بسم الله الرحمن الرحيم اما یجیبال مزتر ازاد و یکش فسول اما يجيب جیب ول و یا گیج بسیم یا موجی و الهی از امال بلاب و وانكشف قفا و انکشف الغتا و انغتر رجا و زاغت الارض و و و الیک وعليك المعون في الشدة والرخوم اللهم صل على محمد وآل محمد أولي العمر الذين فراز علينا تا تقوم و رفتنا بزال کرد منزقومم و فرجار به سلام البسمر اوهبا اغرا يا, يا محمد يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفي علي فإن كافيان وانصراني فإن لكما يا مولانا يا صاحب الزمان الغوز الغوز، الغوز، الصع الص الص على ج علىج علىج على الأمان إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الحسن بحق الحسين وتسعة المعصومين من زرية الحسين اللهم عجل بليك الفراج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما ظالمين غانمين اللهم لا تصلج علينا و من لا يرحمنا اللهم بفقنا لما تحب وترزاب اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا اللهم اغفر لنا و ولوالدي والدينا ولمن لدي وجب له حب علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي و